حجت ابن حسن العسکری المهدی ارواح انا لطراب الله علا عدای مجمعین من الان الى قیام یوم الدین خب به احتمال زیاد امشب شب آخر ماه مبارک رمضان فردا شب دیگه ماه شواله ماه رمضان نه اگه به احتمال زیاد اما شب عیدم قدرشو بدونید تو روایت داره که برابر همه اون کسانی که خدا تو تمام شبهای ماه مبارک رمضان از آتش جهنم آزاد کرده و آمرزیده مثلا شبای قدر شبای ماه رمضان همه رو با هم جمع بزنین معادل همه اینا خدا شب عید فطر می آمرزه و از آتش جهنم آزاد این یه شب خیلی استثنائیه همینجور هم روز عید فید خاطر این اونایی که نماز عید رو برپا می دارن اونایی که روز عید فطر عبادت می کنن. یکی از اعمال شب عید فید افضل اعمالش زیارت محمد مسین علیه السلام فردا شب شب زیارتی عبا عبدالله های. اصلا ما تو مفاتی یه زیارت مخصوص امام حسین داره برا شب عید فتر روز عید فتر هم افضل اعمال زیارت امام حسین نیست دارم به این توجه بفهم بعضی عید که میشه میرن تفریح میرن تو این جادده های شمال باید گیر میکنن تو این رابندون ها این وقت 15 پونزده ساعت تو جاده متر به متر میره نه چه عجله ایده حیفه این شب عید فتر حیف روز عید فتر حیفه حالا آدم میره وگر که میخواد شمالم هم بره بره اما شلوغ میشه جادده ها یه رقم میرنیم اصلا از این جادده شمال که میخواد بره مثلا میگه 17 ساعت ما تو راه بود حیفه خود, خود فردا شوم به احتمال زیاد شب عید فطره حالا هم شب عید فطر هم شب جمعه دیگه واقعا نور علا نور فردا شب خدا رو قسم میدیم به آبروی امام زمان علیه السلام همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دارد اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید آقوهت همه ما رو ختم به خیر فرماید دعاهای ما رو به آبروی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 خب در این شب‌های نورانی ماه مبارک رمضان، ما یه شرح کوتاهی رو عرض میکنیم بر مواعظ و فرمایشات دراربار امیر علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی در نحجل بلاغ نامه سیوی و یکم گذشته ارز کردم که دیگه ما بعد از این چند سالی که در شرح این نامه تو این ماه مبارک رمضان صحبت کردیم دیگه به فرازهای پایانی این نامه رسیدیم حالا یه دو سه جمله امشب و فردا شب که از عمر این مجلس باقی مونده از همین فرازهای پایانی فرمایشات امیرالمومنین یه شرح کوتاهی عرض میکنم دیگه شرح این نامه رو به همین اندازه دیگه ما اکتفا میکنیم حالا امشب من دو جمله یادداشت کردم که الان اگه وقت واقعا اجازه بده راجب دو جمله صحبت کنم اول ببینیم خدا چی میخواد جمله اول در دنباله فرمایشات امیرالمومنین اینه که به فرزندشون میفرمایند ولاتکونن ممن لا تنفعو هل ازتو الا ازا بالق تفی ایلامه ادامه هم داره اون ادامهش هم میخونم این جمله خوبی خوده جمله بعد مرتبط با این جمله است به فرزندشون میفرماین که از اونایی نباش که مؤزه سودی به اینا نمیده اثر در اینا نمیکنه مگر اینکه سرشون بخوره به سنگ بعد مردم دور اینا جمع میشن میگن که ملامتشون میکنن اینام اونجا میگن ما اشتباه کرد از اینطوری اند بذار شما بیای مؤزه کنی اصلا گوشش بده کار نگی دیماغان نکنیم این کار آقابت نداره من تجربه دارم نمونه اصلا بشمار میمونه اینا این راه رفتن سرشون به سنگ خورد اصلا گوش نمیده یا از این گوش میشنه و از اون گوش بیرون میده همون وقتی سرش به سنگ خورد گیر افتاد خدای نکرده وقت افتاد زندان مثلا طبعاتش اومد دامنش رو گرفت مردم دورش جمع میشن ملامتش میکنن میگن آخا آخا این چه کاری بود تو کردی اونجا ممکنه گریم بکنه بگه من اشتباه کرد یعنی موعزه جایی به او اثر میکنه که دیگه اصلا هیچ سودی نداره نوشدارو بعد مرگ سهرا کار از کار گذاشته حالا هی اشک ندامت میریزه میگه من اشتباه کردم کاش نمی رفتم کاش نمی کردم. کاش اون موقع که به من گفتی می شنیدم. بعد پشت سرش میفرماید که این کل اینا رو من یه جمله حساب می کنمم نه کها این دو جمله شد. پشت سرش میفرماید فل عاقله ی تعضض و بل آدم عاقل از تجربه دیگران پند میگیره اما به بخشی خود احانت ها میزم هست ولی کلام امیر المومنی دیگه ول بهاین لا تتعز الا به اما چار پا تا با تازیانه اینا رو نزنی پند نمیگیره آقل از موعزه پند میگیره چهارپا کیه <تصفيق> چون کسی که عاقل نیست اینجا منظورش کسی که عاقل نیست و عقلشو به کار نمیندازه رو با چارپا یکی میاره از اطمین میگه اما چارپا به ضرب تازیانه تربیت میشه تا اگه این ضرب تازیانه نباشه موعظه پذیر نی اینا وقتی سرشون به سنگ میخوره اون اینه ضرب تازیانه است دیگه افتاد گوشه زندان نمیدونم دونم این سهلنگاری اومد دامنش رو گرفت حالا میگه، هی عشق می ریزه میگه من اشتغال کردم کاش نمی میگه این کار چارپا هاست ولی آقل آقا از تجربه دیگران پند می گیرد پس از اونایی نباش که موعزه انسان های راه رفته انسان های با تجربه جوانان سعادتمند به قول حافظ زجان دوستتر می دارند پیر دانا را از جونش هم بیشتر دوست داده. که یه پیره که تمام محاسنشو تو این راست سفید کرده داره موعزش می میگه هم علمه هم تجربه این توجهه با... هم علمی نو میگه هم هزاران مورد من اینو تجربه کردم اتنانه میکنه اما وقتی سرش به سنگ خورد حالا دورش رو میگیرن همه ملامتش میکنن میگن آقا این چه کاری بود هی اشک ندامت میریزه میگه کاش از اول نکرده بودم من بیراهه رفتم من اشتباه کردم میگه اینجوری نباشه خاطرین برای آقایون عرض میکنم که اتفاقا این سبک،, الان این سبک صحبت که اینا رو با چارپایی چی کرد سبک قرآنیه حالا من از قرآن دخونم قرآن میفرماید لهم قلوبون لا یفقهون بها میگه من به اینا قلب دادن اما نمیفهمن از نظر قرآن یکی از ابزارهای شناخت و فهم و درک همین دله دل ربطه نه دل میده ها نه نه همین روحه قلبه قلبم نه قلب سنوبری همون روح روحم هم میفهمه روح هم در... یه چیزایی رو آقای اون روح درک میکند که عقل درک نمیکنه. به خاطر این خدا میفرماید الله خراجکن من بتون عماتکن لا تعلموننش ها من وقتی از شکم مادراتون شما رو بیرون آوردم شما هیچی نمیدونستین و جعل لکن و صمع وال بثه وال بگه ابزار شناخت بتون دادم برین یاد بگیرین میگه گوش دادم چشم دادم دلم دادم یعنی یه چیزایی رو اون دل میفهمه که عقل نمیفهمد گوش نمیفهمد چش نمیفهمد خیلی معارف باید با قلب ادراک بشن ولی اگه من به شما بگم که آقا یه صفایی داره بین الحرمه این شبای جمعه این دلیه یعنی اینو که با گوش صفا داره یعنی چی؟ یعنی هواش خوبه هوای خوب میخوای کنار سواحل مدیترانه. آقا یعنی چی اونجا یه صفایی دارد؟ آقا یکی میره آقا سواحل مدیترانه میاد میگه عجب صفایی داره. اون صفایی که اون میگه رو پوستش میفهمه. گوشه. هواش خوبه. چشش میفهمه. او رو اینا رو میبینه. میگه اصلا یه چیزی بود آقا. صفایی کردی. این صفا رو چش میفهمه. گوش میفهمه. اما اونی که تو بین الحرم این طرف میگه آقا عالمی بودا میگه شبیه بودا اونو دل میفهمه اون که دیگه آقا مال گوش نی مال نیست این یه چیزایی رو آقا دل اینکه شما میگی ما از اون چه حالی میده از شما یا بگی آقا حجب ماهی بود حالی کردیم ما اصلا معرفت میکنه همین آباد. میگه اینا گشنه و تشنه هم میگن حالم کردیم میگه واقعا شس مشوی مقدی اصلا خدا شده میگه که من گفتم این لیسانس گرفت آدم شد خیلی غموله باست این گشنست میگه حال کردی این, این حال آقا حالی نیست که شیش دیک خورده که این حال رو دل میفهمه هرکی هم بره بینون هرمین که سفا میکنه آدمم آدم از آقا این قلب خراب کرده آلوده کرده اگه نگم قلب بیمار شده حالا میره بین حرمه، من ظرافت نمیخوام میگه این خراب شده رو میگن اینجا صفاری داره میگه آقا منو اینجا نجات بده من آقا مکه بودم حج تمتو یه زن و شوهری به در و دیوار میزدند بلیط زودتر پیدا کنم برگردم تهران گفتن آقا مرا اینجا نجات بده و هی میگن اینجا چه صفاری داره چه. آقا چیش صفاری داره اینجا هر کسی که نمیفهمد اگه دلی بیمار بود که دیگه نمی فهمدم. اگه شما کنه کی رو بیاری شبه حال میکنه کی روزه بگیره صفا میکنه مثلا اینجوری هر کی بیاد هیئت عشق میکند گاهی شما آقا صفا میکنی میگه پسرمون بیارم مثلا بعضی این تناخور نیستن دیگه میگه هی بهش میری میگه آقا یه شب بیا آقا بیا این چه خبره ولی اون میاد همش خور میزنه میگه آقا هی بهت میکنه. میگه اولی تازه شروع کرد میگه تموم میشه آخر می... دیوونت میکنه چون هر کی بیاد که صفا که شما صفا میکنی خیام میکنی هر کی رو بیاری نه اون دفعه میاد حالش هم گرفته میشه بعدم میاد بیرون میگه جون من یه سوالی دارم تو واقعا اینجا لذت میبری میگه حضرت حباس من لذت نمی میگه واقعا دیوانه ای یعنی چون اینجا تو کلطم میزنی لذت میبری میگه نمیزنی خودتو خونو مالی میکنی چیف میکنی؟ میگه واقعا شستش رو مغزی بزن شما آقا این چیه؟ بیا ببرمت صفاوت نشون بدم. میگه یه شب با من بیاده خدا شاید آیون شما هر قلب این قلب باید سالم باشه تا بفهمه یوم لا ینفعو مالون ولا بنون الا من اطلا به قلب سلین مگه هر دلی این اولی ابزار شناخته خدا میگه من به اینا دل دادم نمی لهم قلوب رایفقه میگه قلب به اینا دادم و همونی که به سلمان دادم به اینم دادم ولی این از نماز لذت نمیبره از شب شبزندداری لذت نمی بره از روزه لذت نمیبره، از قرائت قرآن لذت نمیبره، از گریه برای امام لذت نمیبره. نمیفهم. هر کیم بگه اینا کیف داره نمیفهمه. میگه حالا ما نمیذاریم، ما کیفی تو اینا ندیدیم. این اون نمیتونه بفهمه شما بگی من روزه میگیرم لذ. الان مثلا این ما تموم شه حالا بعد چه تمی بگیری؟ حالا طاغی، آلید نی. به خدا هفتهی دیگه این شبا این شبا میگه آخد آخد آخد آخد. میگه ما کجا میرفتیم حالیمون نبود <تصفح> نفهمیدی اون بشنبه اصلا شاخ در میاره میگه یعنی جما کهیت هم میکردی تو بارم از اون یعنی گوشنم بودی صفا میکردی تشت هم بودی لهم قلوبون لایفقمون ها. به خدا بعضی ها انقدر غرق گناه شدن دیگه لذت نماز رو بعضی بعضیا انقدر غرق گناه شدن دیگه لذت مجلس امام حسین نمیفهمن بعضی انقدر بیراه رفتن دیگه لذت حرف زدن با خدا رو نمیفهمد. لذت راز نیاز با امام حسین لذت زیارت اون شیرینی زیارت امام حسین رو نمیفهمد. مگه هر کسی میواد اگه آقا میفهمی خیلی خدا رو شب کن به خدا اگه شما میای تو مجلس امام حسین صفا میکنی خیلی خدا رو شب کن یه شب من شب سوم محرم شد اینجا گفتم شب سوم محرم بود روزه است روغیه می خوندم تو یه هییتی بچه یه بچه‌ای 7 ساله اصلا ترکیپ پایینم داشتن چند تا بودن البته بعد این مدعی که اومد بعد از من بلند گوری بچه گونه دید من قلب شدن بچه‌گونه روز روزه خون خیلی این رو دیگه به جلز و بله زنده گفت رقعیه همین که میخوام یه که از او بگم رقعیه همین که اومد با بچه های بازی کنه هلش دادن گفتم تو بابا نداری برو تو بابا نداری ما اینم بچه بود بال بالی زد میگو آخه چرا بابا نداشته باشه تو دلش میگو ترکید خلاصه من که از مجلس اومدم بیرون این بچه اومد منو پیدا کرد. شد هشت سالش بود نه سالش بود. گفت من تا ببینید آقای اون چی میگه. گفت من تا نمی نمیدونستم گریه برای امام حسین اینقدر شیرینه، اینقدر لذت داره. گفت چه حالی میده گریه. گفت الان برای من از هر بازی گریه برای امام حسین بالاتر. گفت الان توپ بیارم. هر جا من دعوت کنم من گریه برای ماموسین رو نمیدم بچه هست توپ رو دوست داره توپ بازی دوست داره فوتبال رو دوست داره ولی میگوه این یه چیز دیگه هست این دل آقا این دل میفهمه اینه که چیزی نی... یکی دیگه همین رو نمیفهمه <تصال> میگه آقا یعنی چی؟ یعنی آدم به گریه کنه کیف میکنه یعنی آدم زجه بزنه م... نمیتونه بفهمه خدا همین رو میگد میگد لهم قلبشون دادم. اما انقدر اینو آلودش کردن انقدر رفتن با معصیت سیاهش کردن کدرش کردن تو هجاب قرار دادن این قلب رو دیگه اینا ادراک نمی کنن نمی فهمن. لهم آزانون لا یسمعونه ها میگه گوش به اینا داده ما نمیشنوند <تصفح> نمیشنوندن که سمعک میخوان نه سمعک نمیخوان نه نه گوششون سالمه اثر نمیکنه، کنه نمیشنبند. من میگم هرچی بهت گفتم نشنیدی نشنیدی نه اینکه که بودی که یعنی اثر نمی کرد دیگه من چقدر بهت گفتم نشنیدی من چقدر گفتم نکن نشنیدی این نشنیدی نه اینکه که سمک یعنی اون موقع اصلا کلت باد دای. اصلا نمیفهمیدی اثر نمی کرد از این گوشت میره و از این گوشت خارج میشد لهم آزانون میگه به اینا گوش دادم نمیفهمن که لهم اعینون لا یبصرون بها بهنا چشم دادن نمیبینن نمیبینن نه نمی عینک نمی میخوان عبرت نمیگیرن عبرت نمیگیرن قند نمیگیرن خب اینا کیان میگه اولائک کلعانعام یعنی سبکه امیرالم میخوام میگم امیرالم نگه میگه بهائم اینجا گفت چهار پاها از قران گرفته قرآن میگه کسی که گوش داشته باشه موعزه دلش اثر نکنه با پا فرمه الان <تصفيق> شما به بخشی نه آنجلی صحبت می شما یه بلنگو برای من بذار دو هزار تا گوسفندم بیار پای صحبت من اثر نمیکنه که هرچه بگم نماز شب اصلا اونها میگه این چی میگه سر هم سرسده ها میگم میگم حالا گوزفن بیازاره اگه جلو سگو اینا باشه که حمله میکنه شکم تو پاره میکنه پارس میکنه امام حسین رو سگا بهش حمله میکنه بدنش اصف میدونه حالا بی بیازاره مثلا اثر نمیکنه کتکت هم نمیزنه اینا قیمه قیمه میکردن واعزو به خدا آدم از آقا واعزو و هم پاره پاره میکنه اصفشو نهل تازه میزنه بدن رو این بعدش خدا چی میگه میگه اولاکک چل انام بلهم ازل اول میگه عین گوسفندم بعد میگه آقا کاش گور میگه کاش گوسفند بودن گور پاره میکنن اگر نگم اینا گمراه تر از چارپات چارپاله اثر نمیکنه دیگه آقا نمیان که دون پاره پاره کنن که نمیان که دیگه حقیقت میشین ترجمه رو می یک کل انام بلهم ازل آخرش می که که اولاک هم القافل اینا قافلند البته اینا از خواب بیدار میشن دیر بیدار میشن همون که آقا فرمودند اینا چه بیدار میشن شب اول قبل می دان عیدات دیگه فایده نداره سرش خورد به سنگ حالا میان شماتتش ما میگن آقا این چه سبکی زندگی میگه آره بیره آره عشق نزامت. میگه بعد زندگی کردم آقا میگن آقا این چه سبکی زندگی بود تو میری رو سینه امام و سین میشینی این چه کاری بود تو کرد میگه آره, آره, آره. میگه یومعزن خدا تو قرآن میگه یومعزن سبک مرتضا علی رو میخوام جا بندازم با آیات قرآن یوم ازن یتذکر الانسان میگه اون روز انسان از خواب بیدار میشه متذکر میشه شود اما میگه و انا لفت ذکر دیگه خب چه فایده دارد بیداری بعد از نوشدارو بعد از مرگ فوراب این چه اثری میتونه داشته باشد یوم ازن یتذکر میگه اینجوری نباش که شب اول قبل از خواب بیدار شید بشنو پند پیر دانا را بید ولی اناس میامون ازا ما تو انتبهون مردم خوابند خواب یعنی خواب قفلت همون که اولاکه همون قافلون مردم خوابند همین که میمیرن بیدار میشن به بدر و چی میگن میگن که رب برجمون چون <تصفيق> ای باباتر رب برجمون میگن خدایا یه فرصت دیگه به ما بده چقدر آدم آقا به ته خطر رسیدن میگن یه فرصت دیگه به ما بده رب برجمون خدایا ما رو برگردون لعل اعمل و فی ما میخوایم مثل انسان های صالح زندگی کنیم میخوایم اون اعمال صالحی که اونجا اصلا اتنابش نمیکردیم خدا چی میگه؟ میگه کلا میگه ممکن نیست اینو به نظر شما برای مرده ها میگه یا برای زنده ها میگه این آیاتو برای زنده ها میگه این آقایون من من معلمم به دانش آموزم میگم که پسر جان من الان سی سال معلمم بگوش برید آقایون تالا من از هیچ دانش آموزی دوبار امتحان نگرفتم من یه بار امتحان میگم میگم تو آخر سال میای به من میگی که یه بار دیگه از من امتحان بگیر من میگم دیگه نمیگیرم ببین کمان که سی ساله به همه دارم همینو میگم من دوبار نمیگیرم محط دارم میگم ولی میگم تو میدونم آخر سال میای میگی دوباره از من یه فرصت میگه به من بده. من نمیدم همین چند روز قدر بدون به شما دارد میگه. میگه آقا می تو میای تو قبر به من میگی منو برگردون. من بر نمی گردونم. همین الان قطع بدم. ای که دستت میرسد کاری بکن ای که دستت می... مارم از اونم به تموم میشه. اما هم تمام نشد ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. تا که دستت می رسد شو کارگر چون فتی از کار خواهی زد به سر این, این جملات این است میگه از اونایی نباش که تو قبر از خواب بیدار میشن اون به درده میخورد سرش وقتی به سنگ میخوره از خواب بیدار میشه بعد حالا احادش گردن دارن شماتتش هم میکنن ملامتش هم میکنن اشک ندامت میریزد این به درد نمیخوره. اگه اجازه بدین حالا سرحال هم هستین من به همین اکتفا کنم چون من روزه رو خیلی دوست دارم <تصفيق> میتونم می یه پارکی یه جمله بعدی رو بخونم ولی میتونم شنواندم خستش خوب گریه نکنه م... گریه کمتر از این حرفایی که من میزنم نیم مثلا شب آخرم هست پیغمبر فرمودن شفی فردا شب بیای دیگه مارم از اون نیم شبایی ما رمزونی اول شبوالی قیامبر فرمودن شبی کسیه که این ماه بگذره و خدا از اون نگذره خدا آیا به ما ترحوم به واسطه هامون ما رو ببرش اما واسطه های خوب می‌بریم ما امشب میخوایم امام حسین رو بیاریم حالا فرض بشه اگه شب عید بود فاطمه زهرا دیگه رسم ترونیایی اینه دیگه سفره رو میدم بی, بی جمع کنه حالا فرض بشه اگر عمری بود حضرت زهرا اما امشبم اجازه میخوام من تو این ماه هم فکر کنم نختوندام تو این سی روز روزه وداع ابی عبدالله خیلی هم حضرت زهرا روزه ودا رو دوست داره به علامه مجلسی فرمودن مجلسی اگه روزه ودا تو سن بخونی هست زهرا پیغام براش داره گو اگه روزه ودا بخونی منم میام میشینم حالا ما که قابل نیستیم بی بی رو دعوت کنیم مجلس مام نیست روزه پسرشه اصلا به ما را بی بی بیاد جای دوری نمیره خدا مجلس ما نیست که روزه اماموساینه مجلس پسرش میشه آقا برای بچه مجلس بگیرم مادر نیا من مادر شهید دیدم برای پسرش اسفهان چون تو پادگان اسفان اسفهان مجلس گرفتن باشد رفت هرچی بودن تو آلت خورد نیارا گفت نه قریبه ها بیان برای پسر من مزلوس بگیرم قیامت از من گله میکنه باید برم باید برم دم در وایستن بعد خوش آمد بگم به بی بی, بی بگیم مجلس مانیکه مئیس حضرت حسین ابن علیه اونم روزه ودا من همیشه تو روزه ودا گفتم این جوان که با شاید من روزه ودا نخوندم اینو نگفته باشم خدا نکنه جوانا با یه مشت عراضل و اوگاش دردیر شیم ناموس تمراخش بیش نیاد سخت جلو مادر پسر رو بزنه پسر عذیت میشه سخت جلو خواهر برادر رو بزنه جلو همسر شوهر رو بزنه به من اگه بگن اعظم مصیبات حسین ابن علی چی بوده من ندارم اینه من دیدم اغلب اهل بیت میگن آتش ولی من نظرم اینه از آتش بالاتر اینه که این مرد نوامیس شمشراش هواه ودای دیگه تو ودا زن و بچه دست و پاشونو گم یکی چادرش میفته یکی مغناش کنار میره نه اصلا تا از پانه میشنستن تو بدار امام گفت اگه بیام جلو خیمه ها اینا نوامی سه من هنی چادرش میازه جلو دشمن دور زد دور زد اومد پشت خیمه گفت خود این خیمه ها خیمه هم تو گودی بود خود این خیمه ها گفت مانع شب زن و بچه هم ترجم کردن چرا این بار استثنان صدای ماموسین از اقل پشت خیمه یه وقت اونجا صدا زد اصلا همه بلاشون بود. تدا زد یا زینه یا سکینه یا رباب علیکنم من سلام خب منم رفتم خدا ها عبارت مختل میگن هشتاد و چار زن و بچه ریختند یکی از جاهایی که میگن همه اومدن بیرون اینجا اطراف عصف و گرفتن جملات هم خیلی تنده ولی اگه شما بتونی با این جملات ارتباط یکی صدا میزد حسین جان کی ما رو مدینه بر ما با تو اومدیم با کی بر میگردیم یکی میگو حسین جان ناموس تو به کی میسخوری می؟ به کی ما رو میسخوری یکی میگو کاش همه هنگ میکردیم ما به وران مدینه با خیال راحت رو به دشمنی هر اما این زنها بلندن چیزی می آتیشتون بدم این زنها قد بلندن آویزون شدن به اسب راوی گفتم برای دختر چهار پنج ساله این قدش نمیرسه به او بشه هی میگو یا ابا انظر الیه یا ابا الیه یعنی منم ببین من قدم که نمیرسه امام خم شد گفت چیه دخترم گفت عمل از چون گفت <تصفيق> که جگرم از تشنگی میزید <تصفيق> آنه سخته هشتاد و چهار زن و بچه رو رد کرد اینا آره دیگه من نمی رسم بگم نمیرسم سکینه اومد پای اسب و گرفت رد کرد عجنه رو رد کرد ارواح مؤمنین رو رد کرد ملائکه رو رد کرد اما حسین نمیدونه با زینب چه بکن راوی گوونه چند قدم دور نشده بود داشت میرفت یه وقتی دیدم یه خانوم بلند بالایی اشتدا میزنه محلن محلان یه زهرا من او وسیعت مادرم رو عمل نکردم کجا میری؟ من زیر گلوتو نبوسیدم پیراهن کهنه نیاوردم. دوباره از آوردش پایین. یه پیراهن کهنه تنش کرد حسینیا من نمیدونم این بوسه به زینب سخت گذشت واقعا سخته جای مادر زیر گلوی برادر رو میبوسید و عشق میریخ یا اون جایی که اومد تو گودال قتلگاه شمشیر شکسته ها رو کنار زد نیزه شکسته ها رو کنار زد این لبه ها رو گذاشت رو اون رگه های بریده بگم عذیت نمیشین میبوسید و اشت میریخ یه وقت شکینه اومد شادره شده امه جان این بدن کیه چرا پیستره چرا پاره پاره است؟ چرا گلوش رو میبوسید چرا رگاهی کردنشو میبوسیم خب این بابای مظلومت حسینه یه مشت از این عربا ریختن تو گودار کاری کردن. یه وقت این دختر صدا زد بابا باشو. اممو دارن تازیانه میزنن